کتاب کتریه سهرامیز و 35 افسانه دیگر نویسنده اندرو لنگ مترجم مجید عمیق ارائه شده از کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای های صوتی به مدیریت محمد جواد بوستانی گوینده فاطمه صادقی لونکای زیبا روزی از روزها پسر پادشاهی به پدرش گفت که قصد ازدواج داره پادشاه با این پیشنهاد مخالفت کرد و گفت نه تا زمانی که کار بزرگی انجام ندادی باید صبر کنی پدر من هم تا زمانی که این شمشیر طلایی رو که به کمرم دارم به دست نیورده بودم به من اجازه ازدواج نداد شاهزاده از شنیدن این جواب خیلی متأثر شد اون هرگز به فکر سرپیچی کردن از دستور پدرش نیفتاد و در مقابل با تمام توان خودش به فکر راه راهچارهی برای حل مشکلش بود به خاطر همین دیگه موندم تو خونه پدر و قصر پدری برای شاهزاده هیچ سودی نداشت تصمیم گرفت به قصد امتحان کردن شانس خودش خونه رو ترک بکنه شاهزاده بعد از طی مسافت طولانی سرانجام مقابل یک کلبه کوچیک رسید. پیرزنی رو دید که کنار اجاق آتیش نشسته و سرش رو پایین انداخته. بهش گفت اصر خیر مادر میبینم که عمر طولانی کردیم. آیا میتونی به من بگی که درباره باره چیزی میدونی یا نه؟ پیرزن گفت حق با توی پسرم. من سن و سال زیادی رو پشت سر گذاشتم اما درباره اونچه که سوال کردی هیچی نمیدونم و اصلا اون رو ندیدم با این حال اگه تا فردا صبح صبر کنی شاید حرفی برای گفتن داشته باشم شاهزاده تا فردا صبح انتظار کشید درست اوایل صبح بود که پیرزن به سراغ شاهزاده اومد و نیلوکی رو برداشت توی اون نیلوک دمید تو یه چشم به هم زدن همه یه کلاقای آلم پرواز کنن خودشون رو بالای سر پیرزن رسوندن. حتی یه کلاق هم قایب نبود. پیرزن درباره سه سساغنه ی از اونها سوال کرد. اما هیچ کدوم از اونها درباره اون هیچی نمیدونستن. و شاه دوباره به راه خودش ادامه داد. مدتی که گذشت، کنار کلبهی دیگه ای رسید که پیرمردی اونجا زندگی می کرد. وقتی شاهزاده سؤال خودش رو با پیرمرد در میون گذاشت، پیرمرد جواب داد چیزی نمی دونه. و بعد هم از شاهزاده خواست که تو کلبه اون استراحت کنه. صبح روز بعد پیرمرد هم مثل پیرزن کلبه قبلی همه یه سیاه رو صدا زد و پیش خودش نگه داشت. دربارهٔ پرسش شاهزاده از اونها سوال کرد اما اونهام چیزی نمیدونستند شاهزاده از پیرمرد خداحافظی کرد و دوباره به راه خودش ادامه داد بعد از طی کردن مسافت طولانی و گذشتن از هفت و سرزمین عاقبت یه روز عصر مقابل یک خونه کوچیکی رسید که ساکن اون یه پیرزن بود شاهزاده با لحنی معدبانه گفت اصر خیل مادر پیرزنم جواب داد اصف خیل پسرم خیلی شانس آوردی که با من روبرو شدی و داری صحبت میکنی وگرنه مرگ دلخراشی در انتظارت بود میتونم بپرسم که راهی کجا هستی؟ شاهصاده جواب داد من در پی پیدا کردن سه تا ساقه نی هستم شما در موردش چیزی میدونید؟ پیرزن جواب داد خودم که چیزی نمیدونم اما اگه تا فردا صبح صبر کنی شاید بتونم جواب سوالت رو بدم. صبح روز بعد پیرزن تو نیلوک خودش دمید بلا فاصله دوباره همه کلاقهای عالم پروازکنان خودشون رو به اونجا رسونده بودن اما فقط یکی از اون کلاقها که از یه پا و یه بال مجروح بود قایب بود پیرزن از کلاقها خواست که اون کلاق مجروح رو هم خبردار کنن وقتی که پیرزن پرسش شاهزاده رو با کلاقها در میون گذاشت فقط کلاق مجروح بود که از محل سساغنهی خبر داشت شاهزاده به اتفاق اون کلاق مجروح که لنگ را میرفت راهی همون محل شدند. عاقبت به یه دیوار بلند رسیدن کلاق گفت شاهزاده سساغنه پشت این دیواره شاهزاده بدون لحظه درنگ اسبش رو کنار دیوار گذاشت و بعد هم بروی اون پرید از بالای دیوار سرک کشید وقتی که سساغنه ای رو دید سری اون رو از توی زمین بیرون کشید بعد هم با خوشحالی راهی قصر پدرش شد وقتی که شاهزاده سوار اسب بود و به سرعت به سمت قصر پادشاه پیش می رفت، یکی از ساغه های نی با یه چیزی برخورد کرد و از وسط به نیم تقسیم شد همون لحظه یه دختر زیبا از داخل ساقه نی بیرون پرید و گفت عزیز دلم تو متعلق به من هستی منم متعلق به توم. خیلی تشنم و یه لیوان آب می اما شاهزاده چجوری می تونست برای اون آب تهیه کنه اصلا آبی دم دستش نبود به خاطر همین اون دختر زیبا پر کشید و از اونجا دور شد. حس کنجکاوی شاهزاده تحریک شد. ساقه‌ی ن دوم رو هم به دو نیم تقسیم کرد و دوباره همون اتفاق افتاد. شاهزاده خیلی مواظب ساقه‌ی نی سوم بود تا اینکه دیگه چاه آب رسید. ساقه‌ی ن رو به دو نیم تقسیم کرد. همون لحظه دوشیزه ای که صد بار زیباتر از دوشیزه های قبلی بود از توی نی بیرون پرید و گفت عزیز دلم تو متعلق به منی و منم متعلق به توام خیلی تشنمه لطفا یه لیوان آب به هم بده این بار آب دمه دست شاهزاده بود دخترک دیگه پر نکشید و ناپدید نشد شاهزاده و دخترک به همدیگه قول دادن که تا آخر عمرشون همدیگه رو دوست داشته باشند بعد هم با هم راهی سرزمین شاهزاده شدند. طولی نکشید که به شهر شاهزاده رسیدن. از اونجایی که شاهزاده میل داشت همسر آیندهاش رو سوار بر کالسکهی زرین به خونش ببره به سمت شهر به راه افتاد. نزدیکی های جایی که چاه آب بود چوبانا و گلدارای پادشاه سرگرم گلداری بودن. به خاطر همین، شاهزاده ایلونکای زیبا رو به اونها سپرد. رفت رفتا سروسات آوردن همسرش به شهر رو فراهم بکنه. ولی متاسفانه سرپرست گلدارای پادشاه دختری پیر و زشت داشت. از قیبت شاهزاده استفاده کرد و فرصت رو غنیمت شمرد. لباسهای شاهانه و زیبایی رو به تن دخترش کرد و ایلونکای بیچاره رو داخل چاه انداخت طولی نکشید که شاهزاده همراه پدر و مادرش و صف بزرگی از خدمت دربار برای اینکه ایوانکای ایلوانکای زیبا رو به خونش همراهی کنه به کنار چاه رسیدن. اما وقتی که اونها با دختر زشت روی گلهدار پادشاه روبرو شدن انقدر حیرت زده بودن که نگو نپرس اما چاره جز همراهی نداشتن. دو روز بعد شاهزاده با اون دختر ازدواج کرد. پدرش هم تاج و تخت رو به پسرش داد اما شاهزاده آروم و قرار نداشت اون خیلی خوب میدونست که گول خورده اما چجوری این اتفاق افتاده بود عقلش به هیچ جایی قدع نمیداد روزی از روزها شاهزاده دستور داد براش از همون چاهی که ایلوانکا رو توش انداخته بودن آب بیارن کالسکران فوری سر اون چاه رفت و زمانی که سطل آبش رو داشت بالا می داخل اون یه اردک زیبا در حال شنا کردن دید. کالسکران حیرت زده شده بود و به اردک نگاه می‌کرد. ناگهان اردک ناپدید شد و در عوضش یه دختر زشت کنار اون ظاهر شد که به اون زم زده بود. اون دختر همراه کالسکران به قصد برگشت. و قرار شد که به عنوان خدمتکار اونجا مشغول کار بشه. دخترک خدمتکار تمام روز کار میکرد. هر وقت هم فرصتی به دست می آورد می نشست و نخرسی میکرد. البته این کار زحمتی براش نداشت چون دوک که دخترک خودش میچرخید و نخار میتابید. نخواار رو میتابید و می ریسید. هر هرچقدر که نخ می ریسید، تمومی نداشت. وقتی ملکه از ماجرای دوک نخریسی خبردار شد، حوس داشتن اون به سرش زد اما دخترک خدمتکار با چرب زبونی از دادن اون خودداری کرد. آخرش دختر خدمتکار با این شرط راضی شد که بتونه یک شب رو تو اتاق پادشاه بخوابه. ملکه خیلی عصبانی شد، سرزنشش کرد اما از اونجایی که میخواست هرطور شده اون دوک نخریسی رو به دست بیاره، شرط دخترک خدمتکار رو پذیرفت. ملکه سر میزشان معجون خواباوری رو به پادشاه داد که بخوره. اون شب دخترک خدمتکار هم به اتاق پادشاه رفت. چهره پادشاه به مراتب دوست داشتنی تر از قبل شده بود. پادشاه هم به خواب سنگینی فرو رفته بود. دخترک خدمتکار کنار تخت پادشاه رفت و سرش رو پایین آورد و گفت عزیز دلم من متعلق به تو هستم و تو هم متعلق به منی برای یکبارم که شده با من حرف بزن من ایلونکای تو هستم اما پادشاه چنان در خواب عمیقی فرو رفته بود که نه حرفای اون رو میشنید و نه جواب میداد ایلونکا غمگین و ناراحت از اتاق بیرون اومد و فکر کرد که پادشاه از داشتن همسری مثل من خجالت میکشه مدتی نگذشته بود که ملکه دوباره کسی رو سراغ دخترک خدمتکار فرستاد تا به اون بگه که قصد خریدن دوک نخریسی رو داره. دخترک خدمتکار برای فروش دوک نخریسی همون شرط قبلی رو دوباره پیش کشید. این بار ملکه حواس خودش رو جمع کرد. تا فراموش نکنه که مرجون خواباور رو به خورد پادشاه بده. برای بار دوم ایلونکا به اتاق پادشاه رفت. تا همون حرف ها رو تو بوش پادشاه دوباره نجوا کرد اما باز هم جوابی نشنید از اونجایی که دخترک خدمتکار دو شب به اتاق پادشاه رفته بود و پادشاه هم به خواب سنگینی فرو رفته بود حالا دیگه خدمتکارای پادشاه هم یه چیزایی دستگیرشون شده بود به خاطر همین خدمتکارا به پادشاه هشدار دادن که از خوردن همه اون چیزایی که ملکه بهش تاروف میکنه خودداری کنند ملکه از برملا شدن رازش چی نمیدونست. چند روز بعد که ملکه سراغ دوک نخریسی رو گرفت قرار شد طبق همون شرط قبلی که گذاشتن دخترک خدمتکار به اتاق پادشاه بره. ملکه دیگه هیچ واهمی از رفتن دختر خدمتکار به اتاق پادشاه نداشت. سر میز شام ملکه انبای خوردنیا و آشامدنیا رو به پادشاه تعارف میکرد. اما این بار پادشاه گفت که اشتها ندارم و هیچ نخورد. پادشاه خیلی زود به اتاقش رفت تا بخوابه. ملکه با دیدن این وضعیت از قولی که به دختر خدمتکار داده بود پشیمون شده. خواست که مانه رفتن دختر خدمتکار به اتاق پادشاه بشه. اما دیگه دیر شده بود و ایلونکا وارد اتاق پادشاه شده بود. پادشاه کاملا هوشیار روی تختش دراز کشیده بود و بی‌صبرانه منتظر چیزی بود که خودش هم نمی دونست که اون چیه. یه دفعه پادشاه مقابل خودش دوشیزه زیبایی رو دید که بالای سر اون خم شده و میگه: عزیزترین عشق من، من متعلق به تو هستم و تو هم متعلق به من چون من ایلونکای تو هستم. پادشاه با شنیدن این جملات قلبش به تپش افتاد. اون بلافاصله از سر جاش بلند شد و با ایلونکا حرف زد. ایلونکا هم همه ماجراها و سختیهایی که براش اتفاق افتاده بود رو برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه بعد از شنیدن حرفای ایلونکا و رنجهایی که کشیده بود و اینکه چجوری فریب خورده بود قسم خورد که ازشون انتقام می‌گیره. برای همین دستور داد که سرپرست گلدارا و همسر و دخترش رو به دار بزنند. و روز بعد پادشاه با ایلونکا ازدواج کرد. هردو با خوشی و شادمانی زندگی خودشون رو شروع کردند. و اگر همونها هنوز زنده باشند، باز در کنار هم خوشبخت زندگی می سفر به دنیای پر رمز و راز ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادویی قصرهای باشکوه و مهمانی های بزرگ شاهانه ه از سفرهای دور و دراز با پای پیاده،